این داستان شاهزاده و قرباقه یکی بود یکی نبود زیر گنبد آبی آسمون در روزگارای قدیم اون زمانی که آدما هر هرچی رو آرزو میکردن به دست می آوردن پادشاهی زندگی میکرد که چند تا دختر زیبا داشت کوچکترین دخترا به حدی زیبا بود که خورشید رو هم به حیرت درآورده بود. نزدیک قصر شاه یه جنگل انبوه و تیره بود که وسط اون زیر یه درخت کهنسال یه برکه باصفا و زیبا بود. یکی از روزای خیلی گرم تابسون دختر پادشاه به جنگل رفت و کنار آب خنک برکه نشست. سکوت برکه حوصلش رو سر برد. شروع کرد به بازی کردن با یک گوی و وسط بازی بود که گوی از دستش قلتید و از روی علفا سر خورد و افتاد توی برکه آب برکه گود بود و تهش پیدا نبود برای همه گوی طلایی توی برکه آب نابدید شد شاست خانم جیغی کشید و شروع به گریه کردن کرد که ناگهان صدایی به گوشش رسید. دختر پادشاه چرا گریه می کنی؟ دل سنگ رو هم آب میکنه. شاهزاده خانم سرش رو برگردند و دید قرباقهی سر زشتش رو از آب بیرون رو برده. شاهزاده گفت تا آب بازه کنه کار؟ گویه تلاییم توی برکه افتاد. برای همین گریه میکنم. قورباغه گفت این که گریه نداره من پیداش میکنم ولی در ازای پیدا کردن گویه طلایی به من چی میدی شاهزاده خانم گفت ای قرباقه عزیز تو اون گور رو پیدا کن هرچی که دلت خاص بهت میدم از لباسام گرفته تا مرواریدام جواهراتم یا حتی تاج زرینی که به سر دارم قرباقه گفت هیچ کدوم از اینا رو نمیخوام. لباسات، مرواریدات، جواهراتت، حتی تاج زرین روی سرت به دردم نمیخوره. دلم میخواد دوسم داشته باشی و بساری همبازی تو باشم، بساری همراهت باشم. دوست دارم پشت همون میزی که تو میشینی بشینم، از همون بشقاب طلایی غذا بخورم که تو میخوری. از همون فنجونی بنوشم که تو مینوشی و در رخت خواب زیبات بخوابم. اگه اینا رو قبول داری من میرم توی آب و گوی طلایی رو برات پیدا میکنم. جاستاد خانم گفت اگه گوی منو پیدا کنی قول میدم هر کاری که بخوای انجام بدم. ولی پیش خودش گفت گرباقه احمق وراج. تو باید با همجنسای خودت بپری و مرقور کنی هرگز نمیتونی هم ی آدم بشی گرباخه که وعده های شاه رو باور کرد پرید توی آب و گوی تلایی رو پیدا کرد اونو به دهنش گرفت و روی سبزه ها کنار برک پرت کرد دختر پادشاه که گوی طلایی رو دید خوشحال شد اونو برداشت و دوون دوون به طرف قصد دوید. گرباقه دنبال شهستاد خانم میپرید و میگفت یواشتر یواشتر من نمیتونم بهت برسم ولی شاست خانم صدای گرگور اونو رو نشنید و به قصد رسید و خیلی زود قورباغه رو فراموش کرد. گرباقه بیچارم به برکه برگشت و همونجا نشست. روز بعد شهستاد خانم کنار پادشاه و درباریان داشت غذا میخورد که از راپله های مرمری بیرون قصر صدای عجیب شلپ شلپی به گوشش رسید. بعد صدای بلندی گفت زیبا در رو باز کرد. شاه ساده در باز کرد. وقتی چشمش به قورباغه افتاد در و محکم بست و با عجله و رنگ و روی پریده برگشت و پشت میز نشست. پادشاه که دخترش رو وحشت زدید پرسید. دخترم، چه کسی پشت در بود؟ آیا قولی به دنبال تو اومده و میخواد تو رو با خودش ببره؟ دختر گفت، آه پدر، نه قول نبوده، فقط یک قورباغه بزرگ و زشته. پادشاه گفت، یک قورباغه؟ دخترم قورباغه با تو چی کار داره؟ شاهزاد خانم هم داستان برکه و گوی طلایی و قورباغه رو برای پادشاه تعریف کرد که دوباره صدایی پشت در گفت، دختر پادشاه، دختر پادشاه، درو در باز کن، تو به هم قول دادی که همراه و هم نشینت باشم. پادشاه که این حرف رو شنید گفت، دخترم، تو باید به قولت وفا کنی، زود در رو باز کن و بذار غرباغه وارد قصر بشه. شهزاد خانم با میلی رفت و درو در باز کرد. غورباغه پرید توی قصر و دنبال شهزاد خانم وارد سالان غذاخوری شد کنار پای دختر نزدیک صندلی نشست و بلند گفت منو کنار خودت بذار شاهزاده خوشش نمیآمد ولی به اجبار پدرش غورباغه رو بلند کرد و روی صندلی کنار خودش نشون غورباغه دوباره گفت حالا بشقاب طلایی کوچیک و بذار تا بعضش غذا بخورم. شاهزاده به حرفش گوش داد. ولی این کارو واقعا دوست نداشت. قرباقه گفت من سیر شدم، سیر شدم، خیلی هم خستم. حالا منو به اتاق خوابت ببر که تو طبقه بالاست که میخوام تو رخت خواب شمیت بخوابم. اونو برام آماده کن تا با هم توی تخت خواب بخوابیم. شاهزاده خانوم از این حرف گریش گرفت. اون از قورباغه که بدنش سرد بود و اون شکلی بود میترسید و دلش نمیخواست بهش دست بزنه ولی قورباغه واقعا میخواست تو رخت خوابش بخوابه. پادشاه اشکای دخترش رو دید ناراحت شد و بهش گفت آدم نباید از کسی که در گرفتاری بهش کمک کرده نفرت داشته باشه شاهزاده خانم به ناچار اطاعت کرد و با دوتا انگوشتاش قرباقه را از خودش دور نگه داشت و برد طبقه بالا و گوشه اتاق پرتش کرد. شب که شد تا شازده خانم اومد توی رخت دراز بکشه از گوشه اتاق قرباقه خزید و بهش گفت من خستم منو بلند کن و در رخت بخوابون. بخابون به به پدرت میگم آن. خانم عصبانی شد. چنگ زد و غورباغه رو بلند کرد کنار تخت خواب انداخت و محکم اونو به دیوار فشار داد و گفت قرباقه زشت امیدوارم خفه خون بگیری در همین لحظه شاهزاد خانم با حیرت دید که غورباغه به شاهزاده جوون و خوشقیافه با چشای زیبا و نگاهی سمیمی تبدیل شد شاهزاد خانم بعد از موافقت پادشاه با اون شاهزاده قرباقه ازدواج کرد و برای همیشه همراه شد. قبل از مراسم عروسی شاهزاده جوان تعریف کرد که چطور یک جادوگر بدجنس اونو به شکل قرباقه در آورده بود و محکوم کرده بود که توی اون برکه زندگی کنه تا شاهزاده خانومی بیاد و نجاتش بده. بعد از عروسی، شاهزاده گفت که باید شاهزاده خانم رو به سرزمین پادشاهی خودش ببره. خلاصه، روز عروسی، کالسکی با شگو که تا اسب سفید اونو می کشیدن در کنار دروازه قصر آماده کرد. سر ها رو پر سفید زده بودن و اونا رو با زین و یراغای از طلا تزین کرده بودن. در کنار اونا هری که محافظ وفادار شاه بود ایستاده بود. این محافظ وفادار از قرباق شدن شاه ساده خیلی ناراحت بود و غمگین شده بود. برای همین سرشته فلزی دور قلبش بسته بود تا از قصه دق نکنه. عروس و داماد با کالسکر راه افتادن و محافظ هم که غرق در شادی بود در جای همیشگی خودش نشست، و برای شاهزاده تعریف کرد که برای اینکه قلبش از قصه نترکه اونها رو با رشده های فلزی بسته بود حالا که از شادی داره پر میکشه، اونها رو داره باز میکنه. شاهزاده خانم و شاهزاده جوان هرگز فراموش نکردند که محافظشون هری چقدر توی گرفتاریها به پادشاه وفادار بوده